دوستوی خوبم به دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدیم. زمن مطالعه کتاب مقدس به کتاب اعمال رسولان رسیدیم و در اونجا اعمال رسولان رو مورد بررسی قرار میدیم و یا بهتر بگیم اعمال روح القدس رو بررسی میکنیم. تاریخ برای ما اهمیت زیادی داره چون ضمن مطالعه از اون سرمشخوا و عبرت میگیریم. ضمن مطالعه از روح القدس بخواید که از سرمشقها و عبرتها به شما تعلیم بده. حالا با هم به معلممون گوش می و به مطالعه اعمال رسولان ادامه میدیم. کتاب اعمال رسولان پیدایش کلیسا رو اینطور شرح می‌ده. این شرحی از روز پنتیکاست هست. وقتی روز پنتیکاست رسید، همه شاگردان در یک جا جمع بودند. ناگهان صدای شبیه وزش باد از آسمان آمد و تمام خانه ای را که در آن نشسته بودن پر ساخت. در برابر چشم آنان، زبانه هایی مانند زبانه های آتش ظاهر شد که از یک دیگر جدا گشته و بر هر یک از آنان قرار گرفت. همه از روح القدس پر گشتند و به طوری که روح به ایشان قدرت تکلم بخشید به زبانهای دیگر شروع به صحبت کردند. در آن زمان یهودیان خداپرست از جمیع ملل زیر آسمان در اورشلیم اقامت داشتند. وقتی آن صدا به گوش رسید جمعیت گرد آمدند و چون هر کس به زبان خود سخنان رسولان را شنید همه غرق حیرت شدند و در کمال تعجب اظهار داشتند مگر همه این کسانی که صحبت می‌کنند جلیلی نیستند پس چطور هست که همه ما فردم فرد پیام آنان را به زبان خودمان میشنویم همه حیران و سرگردان به یکدیگر میگفتند یعنی چه اما بعضی می میگفتند اینها از شراب تازه مست شدن. اما پتروس با آن یازده رسول برخاست و صدای خود را بلند کرد و خطاب به جماعت گفت ای یهودیان و ای ساکنان اورشلیم توجه کنید بدانید و آگاه باشید که برخلاف تصور شما این مردان مست نیستند زیرا تازه ساعت نه صبح است بلکه این همان چیزی است که یویل نبی در نظر داشت وقتی گفت خدا میفرماید در زمان آخر چنین خواهم کرد از روح خود بر جمعی انسان ها فروخ و همریخ و پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد و جوانان شما رویاها و پیران شما خواب ها خواهند دید آری حتی بر غلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح خود فروخ و همریخت و ایشان نبوت خواهند کرد اینجا باب دوی کتاب اعمال رو میبینیم که روز پنتیکاست رو توضیح میده این خیلی اهمیت داره که وقتی به این باب میرسیم درکی از قدرتی که به کلیسا داده شده به دست بیاریم. وقتی به این باب میرسید مهمه که اولا بدونید این واقعه در یک روز مهم مذهبی به نام پنتیکاست اتفاق افتاد. پنتیکاست عید یهودیان بود که اونها جشن خرمن و شوق گذاری داشتند. این عید مخصوص یهودیان بود. مردم از دیرباز باور داشتند که اگه خرمن برای خدا نباشه محصولی نخواهد داشت مردم می‌دونستانت که خدا منبع پروسه‌ای هست که طی اون محصول به بار میاد این برمیگرده به تاریخ قوم یهود و به روز پنتیکاست به لحاظ نمادین اهمیت فراوانی در این واقعیت هست که این واقعه زیبا این واقعه بسیار مهم در روزی به وقوع پیوست که جشن خرمن برگزار می‌شد چون که محصول بزرگی در حال برداشت بود خدا در صدد بود بزرگترین برداشت تمام دورانها رو به ظهور برسونه. عیسی وقتی در یوحنا 4.35 گفت توجه کنید به شما میگویم به که نگاه کنید و ببینید که حالا برای در آماده هستند. در اینجا در واقع عیسی میگفت مردم آماده اند که پیام انجیل رو بشنوند. مردم رسیدن و بسیار علاقمند مسائل روحانی هستند. در ترجمه دیگری گفته نگاهی به اطرافتان بندازید تا ببینید که مزرعه‌های وسیع از جانهای مردم برای درو آماده است. خدا در روز پنتیکاس بنای کلیسای خود را شروع کرد. سرنخ هدفی را که به کلیسا در اعمال رسولان داده شده گم نکنید. هدف از ایجاد کلیسا در اعمال رسولان انجام دادن معموریت بزرگ عیسی بود که می‌گفت به اقصانجات جهان بروید و تمامی ملت‌ها را شاگرد سازید. کلیساهای منو بنا کنید. با این هدف بود که قدرت پنتیکاست آمد و به همین دلیل در روز جشن خرمن یعنی در روز پنتیکاست آمد. وقتی اون روز بزرگ رسید به همراه آمدن روح القدس آیات و نشانه ها به وقوع پیوست همونطور که قبلا گفتیم شاید مهمترین نتیجه پنتیکاستیم بود که سه هزار شاگرد ساخته شدند. یادتون باشه منظور از آمدن قوت روح القدس همین مطلب بود هرگز این دیدگاه رو پراموش نکنید اما، در اونجا آیات و نشانه های دیگری هم بود که به همراه قوت پنتیکاس به وقوع پیوست. صدای مهیبی وجود داشت که شبیه صدای وزش باد قدرتمندی بود. اون صدا انقدر عظیم بود که توجه مردم رو جلب کرد که بیان و ببینن چه اتفاقی داره میفته. احتمالاً صدای مانند گردباد یا طوفان بوده. بعد زبانه های مانند آتش بر روی سر کسانی قرار گرفت که نبوت می‌کردند. بعد همون افراد شروع کردند به صحبت کردن به زبان‌های غیر حقیقت جالب و ملموس صحبت کردن به زبان‌ها این بود که هر کسی متوجه می‌شد که چه چیزی گفته می‌شه این مهم نبود که زبان اون اشخاص چی بود همه درک می‌کردند که چه چیزی گفته می‌شه دو جمله در این باب پنتیکاستی وجود داره که به ما کمک می‌کنه که به مفهوم این باب تمرکز کنیم اولا سؤالی بود که توسط مردم پرسیده شد معنی این رویداد چیست وقتی مؤازیه روز پنتیکاست خودش رو شروع کرد و اینطور گفت این همان چیزی هست که یوئیل نبی در نظر داشت وقتی گفت خدا می‌فرماید در زمان آخر چنین خواهم کرد از روح خود بر جمیع انسان‌ها فرو خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد و جوانان شما ها و پیران شما خواب خواهند دید یادتونه که وقتی انبیا رو بررسی می‌کردیم گفتیم نبی کسیه که از طرف خدا حرف می‌زنه و یا نبی کسیه که خدا توسط او حرف میزنه. مفهوم نبوت یعنی صحبت کردن از طرف خدا. وقتی موسی به کوه سینا رفت و برای قوم خدا شفاعت کرد، او یک کاهن بود. و وقتی خدا به او کلامی برای قوم داد و او از کوه پایین آمد و کلام خدا رو به مردم بازگو کرد، او یک نبی بود. خدا توسط انسان صحبت میکنه و این یعنی نبوت. جالبه که اینجا در اعمال باب دو پیامی که توسط زبان ها داده شد یک نبوت بود اون نبوت در گوش مردم قابل درک بود و پیامی از طرف خدا برای اونها بود وقتی اول قرنتیان باب 14 رو میخونید باب بزرگی مربوط به زبانها رو در عهد جدید خواهید دید وقتی پولس در اول قرنتیان 14 درباره باره زبان زبانها صحبت میکنه، به نظر میرسه چیزی که او در این باب از اون تحت عنوان عطیه زبانها صحبت میکنه چیزی کاملا متفاوت از زبانهایی هست که در روز پنتیکاس می میبینیم اینو از اون جهت میگم که در اول قرنتیان باب 14 آیه 2 پولس میگه که در عتیه زبانها ها کسی که به زبانها سخن میگوید روی سخن او با خداست نه با مردم چون دیگران آنچرا که او میگوید نمیفهمد زیرا او با قدرت روح القدس اسرار الهی را به زبان می آورد. هیچ زبان قابل درکی نیست بلکه زبانی کاملا رمزی هست این خطاب به انسان نیست بلکه مستقیما خطاب به خدا هست او با خدا صحبت میکنه نه با انسان ها حالا این به مسیر دیگری از زبان ها برمیگرده که در اعمال رسولان باب دو درباره اش خوندید پتروس گفته این نبوته این همون نبوتیه که یویل نبی گفته روزی خواهد رسید که دختران و پسران خدا وقتی روح خدا بر اونها قرار بگیره نبوت خواهند کرد این اتفاقی بود که در روز پنتیکاست افتاد این نبوت به موانع زبان فائق آمد و پیامی بود مستقیما خطاب به انسانها. به نظر من وقتی شما به اول قرنتیان باب 14 در مورد عطیه زبانها می رسید با چیز کاملا متفاوتی مواجه می شید. عطیه زبانها در اونجا به نظر می که زبان دعا هست که این امکان رو برای ما فراهم می کنه که در خلوت دعایی خود با خدا چیزهایی را با خدا در میون بذاریم که بجز به جز به وسیله زبانها نمی تونستیم به خدا کنیم. همانطور که پولس رسول در رومیان اینطور میگه اما خود روح خدا با ناله هایی که نمیتوان بیان کرد برای ما شفاعت میکنه. روح القدس میتونه زبان ما رو به کار بگیره و چیزهای بیان ناکردنی رو بیان کنه. من تصور میکنم این همون اتیه زبان هاست. اما در کتاب اعمال رسولان در روز پنتیکاست آیات و نشانه هایی بودن که به همراه آمدن قوت پنتیکاست ظاهر شدن. این نوع زبان در مسیر دیگری قرار میگیره. گیره. این نوع زبان زبانها در مورد نبوت هست. وقتی کتاب اعمال رو میخونید، متوجه خواهید شد که بیش از یک تجربه پنتیکاستی وجود داره. شما وقتی انجیل در اورشلیم منتشر میشه، قوت پنتیکاست رو خواهید دید. وقتی اونها به سامره میرند اونجا پنتیکاست دیگری رو می بینید. روح القدس همونطور که در روز پنتیکاست دیدیم، دوباره تجلی پیدا میکنه وقتی اونها به طرف دنیای غیر یهودیان در اعمال باب ده پنتیکاست دیگری رو میبینید. وقتی اونها به جایی میرففتند که اروپای امروزی هست تجربه زیبایی رو می بینیم. یک مداخله الهی رو میبینید که میتونید به اون خدمت پولس بگید. اون مانع میشه که پولس به آسیا بره و او رو به طرف اروپا هدایت میکنه. بعد وقتی انجیل در آسیا منتشر میشد، وقتی که به طرف افسوس گسترش پیدا میکرد، پنتیکاست دیگری رو میبینید. وقایه پنتیکاستی فراوانی رو در کتاب اعمال رسولان میبینید که حضور روح القدس رو نشون میده و ثابت میکنه. وقتی کتاب اعمال رسولان رو میخونید، به دنبال این وقایه بگردید. وقتی این پنتیکاست ها رو ملاحظه میکنید، توجه داشته باشید که همه اونها به اهداف کلیسا مربوط میشن که همون ماموریت بزرگ هستند. کتاب مقدس میگه اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود پنتیکاستها به دلایل مختلفی میاند یکی از اون دلایل انجام ماموریت بزرگ است چیز مهم دیگری هست که وقتی کتاب اعمال رسولان رو می باید ملاحظه کنید الگوهایی رو ملاحظه کنید که در نسل اول کلیسا پدید آمدند به طور خلاصه هدفی که به کلیسا سپرده شده و وعده‌ای که به کلیساها داده شده و قوتی که به کلیساها عطا شده را ملاحظه کنید کارهایی رو که توسط کلیسا اجرا میشه ملاحظه کنید چیزهایی مثل ها رو در کلیساها ملاحظه کنید کسانی را که کلیسای واقعی هستند ملاحظه کنید و وقتی همه این چیزها را ملاحظه کنید الگوهایی را که در این کلیساها به وجود آمدند ملاحظه خواهید کرد چون این الگوها سرمشقی برای من و شما میشد. در اول قرنتیان ده یازده میگه همه این اتفاقات به عنوان نمونهای بر سر آنان آمد و برای تربیت ما به عنوان عبرت نوشته شد زیرا ما در زمانهای آخر زندگی میکنیم. وقتی الگوهایی رو که در تاریخ نسل اول کلیسا به وجود اومده ملاحظه میکنید، قبل از هر چیز الگوی خود کلیسا رو ملاحظه کنید. شما میتونید به این الگو اثر انگشت مرئی کلیساهای نامرئی بگید. از کجا میتونید از کجا میتونید بدونید کلیسایی که شما عضوش هستید تجلی بارزی از کلیسای نامرئی هست؟ الهیدانان از کلیسای مرئی و کلیسای نامرئی صحبت می و یا از کلیسای جهانی و کلیسا در بوده محلی صحبت می پولس نامه‌هایی می نویسه مثل نامه‌اش به قرنتیان به کلیسای خداوند که در قرنتوس هست حالا کلیسای خداوند یک چیز نامرئی هست این موجودی زنده است که فراتر از یک تشکیلات سازمانیه. اما کلیسای خداوند که در قرنتوس هست، کلیسای محلی و قابل مشاهده هست. میتونید اون رو ببینید. یک تجلی ملموس و قابل مشاهده از کلیسا وجود داره. عهد جدید به شما میگه عقیده بر این هست که وقتی شما از نو متولد میشید، از روح القدس تعمید میگیرید و وارد بدن مسیح میشید. این ربطی به عضویت در کلیسا نداره. اگه شما تولد تازه دارید، پیشاپیش پیش عضو بدن مسیح شده ای. اما بعد در حالت محلی در کلیسای قابل مشاهده شما می دونید به کلیسای مرئی و قابل مشاهده وصل بشید چرا که شما عقیده دارید کلیسای مرئی تجلی کلیسای جهانی و غیر قابل مشاهده و بدن مسیح است از این نظر شما از کجا می دونید که کلیسایی که عضو اون هستید کلیسای محلی شما سیمای مرئی کلیسای نامرئی یا کلیسای جهانی است اینجا بر مبنای آنچه که در اعمال رسولان خانده ایم وجود داره این کلیسا در اعمال رسولان تا جایی که ما میتونیم اونو ببینیم این آثار انگشت رو داره این آثار مرئی کلیسای حقیقی نامرئی و جهانی هست اولا اثر انگشت شست که بشارت هست اونها هرگز دیدگاه و اهداف خودشون رو فراموش نکردند. هدف اونها شاگردسازی بود بنابراین با پوشکار زیاد به این کار پرداختند. بعضی از افراد در کلیسای محلی اونها معکدن به شما میگن که آخرین کلام عیسی این بود. اجازه ندید کسی خبردار بشه. اینو برای خودتون نگه دارید، مثل یک فرمانی سری. رسولان فهمیده بودند که باید به همه جا سفر کنند و به مردم بشارت بدن. این اثر انگشت شست کلیسای اونها سه هزار نفر در روز پنتیکاست تبدیل شدند و هزاران نفر بعدها تبدیل یافتند. این به خاطر این بود که اونها اثر انگشت شهست داشتند که خدمت خارج از منطقه خودشون بود اما وقتی سه هزار نفر در روز پنتیکاس تبدیل شدند، رسولان میدونستند که با اون سه هزار نفر چی کار بکنن من اینو خیلی دوست دارم که در اعمال رسولان با بدعای 42 عنوان شده این آیه میگه اونها وقتی تبدیل می شدن، همیشه وقت خود را به شنیدن تعالیم رسولان و مشارکت برادرانه و پاره کردن نان و دعا می گذرانیدن. این آیه برخی از آثار انگشت مرعی کلیسای نامرعی رو به ما نشون میده. اولا کلیسا با اثر انگشت شست خودش مشخص می کرد که کلیسایی بشارتی و خدمتی هست اما وقتی این کلیسا توسط خدمت بشارتیش مردم رو به مسیح می آورد، بعد از اون کلیسایی تعلیمی می شود. تعلیم اثر انگشت سبابه کلیسا بود این تبدیل شده ها به تعالیم رسولان. و رابطه با رسولان که معلمین اونها بودند، ادامه میدادند. حالا ما به اثر انگشت مرئی وسطی کلیسای نامرئی میرسیم که رفاقت و معاشرت بود. من فکر میکنم این جایی که ما در کلیساهای امروزی کم میاریم در کلیساهای نوعی در ساعت یازده صبح روز یکشنبه شبان وقت خودش رو به خدمت کلیسا اختصاص میده. بهترین لباس‌ها رو پوشیده و بوی خوبی هم میده و بلند میشه و بهترین موعظه رو میکنه. همه مردم اونجا شیک پوشیدن و بوی خوبی میدن. بعد وقتی اون پیام رو شنیدند میرند و میگن میرند و میگن خدای من عجب تعلیم عالی در اغلب کلیساها این تنها کاری که انجام میشه بعد همین اتفاق در هفته بعد هم تکرار میشه که همه لباس خوب میپوشند و شبان هم دیگه ای می میکنه من معتقدم بهتره که اونها این ها رو از تلویزیون تماشا کنن و بیخودی وقتشون رو برای آمدن به کلیسا هدر ندهند چونکه هیچ تعاملی با معلم و سایر ایمانداران ندارند، اونا واقعاً برای دوستی اونجا نمیرن اما در کتاب اعمال رسولان رسولان بر این که کسانی که اونها بهشون تعلیم میدن باید با همدیگر مراوده داشته باشند. این فکر از کجا پدید اومده؟ شاید اونها این فکر را از عیسی گرفته بودند، اونجایی که عیسی گفت بیایید و ببینید. اگر میخواهید بدونید، من کجا زندگی میکنم. بیایید و با من زندگی کنید. من به شما نشون میدم که چطور باید زندگی کنید. ما باید با همدیگه معاشرت کنیم و با همدیگه دوستی داشته باشیم. ایمانداران قرن اول با رسولان و معلمین خود معاشرت می کردن. کلمه یونانی برای رفاقت کوینونیا هست. سهم کفاش واعظ پیر کلیسای اسخفی کلمه ی رفاقت رو اینطور تعبیر کرده. دو نفر در یک کشتی رفاقت یعنی ما با همدیگه، در یک کشتی قرار داریم ما با همدیگه مشارکت داریم ما رابطه و تعهد داریم رسولان این رو با عیسی داشتند. اونها با معلمشون رفاقت میکردند. وقتی رسولان شروع به تعلیم کسانی کردند که در روز پنتیکاس تبدیل شده بودند در کتاب اعمال میخونیم که این افراد با پوشکار به تعالیم رسولان و رفاقت با آنان ادامه دادند پس اثر انگشت وسطی کلیسای نامرئی یا کلیسای جهانی رفاقت است بعد از سر انگشت انگشتر این کلیسای نامرئی پرستش است اونها با پوشکار به تعالیم رسولان و به رفاقت و پاره کردن نان دامه میدادند این همون مراسم ایشای ربانی بود که عیسی توصیه کرده بود تنها چیزی که عیسی به اونها گفته بود این بود که وقتی گرده هم میایند به یاد بوده و انجام بدن یا او را بپرستند چیزی بود که به اون شامه خداوند یا شام آخر و یا ایشای ربانی میگی یس‌ا بعد از شوک‌گذاری نان را پاره کرد و گفت: این از بدن من برای شما. این را به یاد من بجا بیارید. همانطور، پس از پیاله شام رانیز برداشته گفت: این پیاله همان پیمان تازه ای است که با خون من بسته می‌شود. هرگاه این را می‌نوشید، به یاد من بنوشید. بنابراین وقتی این مسیحیان اولیه در عرصه رفاقت گرده هم میامدند، با اشاره ربانی خداوند را می‌پرسدیدند و میخونیم که در ادامه دعا میستادن بنابراین اثر پنجمین انگشت یا انگشت کوچک دعا کردن بود اونها کلیسای دعا بودند از اونجایی که بدون قوت پنتیکاستی نمیتونید کار خدا را انجام بدید بنابراین باید دعا کنید و از خداوند اون قدرت رو بطلبید. دائهما باید دعا کنید اگر این صحت داره که این شما نیستید بلکه او هست و شما نمیتونید اما او میتونه بنابراین باید همواره در دعا باشید وگرنه چطور میتونید ای باشید که خدا توسط اون کار کنه. در کتاب اعمال رسولان آثار انگشت مرئی که در کلیسای نامری کار میکرد اینها هستند. اثر انگشت شست بشارت دادن مداوم و یا معموریت بزرگ هست. اثر انگشت سباب تعلیم، اثر انگشت میانی رفاقت یا کوینونیا و اثر انگشت انگشتر پرستش بود. محبت اونها به مسیح قیام کرده در پرستش اونها متجلی میشد هر انگشت کوچک دعا بود نه اینکه اون اهمیت کمتری داشت یا مسئله کوچکی بود استفاده از انگشتان به من کمک میکنه که این پنج مشخصه کلیسا رو به خاطر بسپارم وقتی کتاب اعمال و بقیه عهد جدید رو میخونید پنج مشخصه بارز دیگر از کلیسای نامرئی رو خواهید دید اینها پنج اثر انگشت دست دیگر هستند که عبارتند از اثر انگشت 60 که اتحاد هست. همه این مردم با هم یکی بودند. عیسی در دعای بزرگ خودش در یوحنا 17 پنج بار دعا کرد که اونها با هم یکی باشند و اونها یکی بودند. ذهن اونها با هم دیگر یکی بود. همگی ذهن مسیح را داشتند. اونها اتحاد داشتند دا و هم دل بودند. اثر انگشت سبابه دست دیگر تنوع بود. اونها اتحاد داشتند ولی هرگز تنوع خودشون رو به خاطر اون اتحاد از دست ندادن هایی هستند که اتحاد دارند اما تنوع رو تحمل نمیکنند. وقتی با اونها متحد هستید به تنوع اجازه نمیدن. اتحاد از دیدگاه کتاب مقدس این نیست این همسانی است هایی هستند که اتحاد دارند و از شما میخواند برید و به اتحادیه اونها بپیوندید ولی اجازه ندارید متنوع باشید شما مجبورید منحصر به فرد بودن خودتون رو فدا کنید تا بتونید به اونها بپیوندید. اما در عهد جدید اتحاد به همراه تنوع وجود داره بعد به این توجه کنید اثر انگشت میانی تکسر بود در عهد جدید وقتی کلیسای محلی تأسیس می شد اینو ملاحظه کنید که همیشه کلیساهای محلی شبانانی داشتند. جمعی از شبانان نه یک شبان مفهوم یک شبان در یک کلیسا به هیچ وجه کتاب مقدسی نیست چون در این کلیساهای کتاب مقدسی ملاحظه خواهید کرد اونها همیشه شبانانی داشتند هرگز یک شبان نداشتند بلکه جمعی از شبانان تمام کار کلیسا در عهد جدید به تمام اعضای کلیسا سپرده شده بود و از این رو یک تکثر سالم در کلیساهای عهد جدید وجود داره من فکر میکنم کنم یکی از موانع بزرگ در کار کلیساهای امروزی اینه که ما مفهوم هرفهی رو به کار گرفتیم بدن ایمانداران به نظر میرسه که میگه بذارید یه هرفهی این کار رو بکنه ما برای این حقوق میپردازیم او به دانشگاه رفته و مهارت و ابزار لازم رو داره من کیم که درگیر این خدمت کلیسا بشم پس میذاریم که هرفهی ها این کار رو بکنن و بدین وسیله اعضا برکات زیادی رو از دست میدن کلیسا های عهد جدید تکسر در رهبری و که تمام کار کلیسا به تمام کلیسا سپرده شده. اثر انگشت انگشتر در کلیساهای نامرئی همدلی یا محبت عملی هست. عیسی میگه اگه نسبت به یک دیگر محبت داشته باشید، همه خواهند فهمید که شاگردان من هستی. این چیزی بود که دنیا در مورد کلیسای عهد جدید میگفت. ببین اونها چه محبتی به هم دارند. حالا نمیدونم آیا دنیا اینو در مورد کلیسای شما هم میتونه بگه؟ من اغلب از خودم میپرسم آیا این در مورد کلیسایی که من عضوش هستم گفته میشه که ببینجب محبتی نسبت به هم دارن؟ اگه گفته میشه آیا شواهد کافی از این هست که ما رو ملزم بکنه؟ در واقع آیا شما در کلیسای محلیتون نسبت به هم محبت میکنید؟ یکی از نشانه های بارز یا آثار انگشتی که کلیسای نامرئی رو از طریق کلیسای محلی شما متجلی میکنه، محبت کردن شما به هم دیگر هست، یادتونه که عیسی در بالخانه به شاگردان گفت به شما حکمی تازه می دهم که یکدیگر را محبت نمایید چنان که من شما را محبت نمودم تا شما نیز یکدیگر را محبت نمایید به همین همه خواهند فهمید که شاگرد من هستید اگر محبت یکدیگر را داشته باشید بنابراین همدلی یا محبت نسبت به یکدیگر اثر انگشت انگشتر در دست دیگر هست. برابری اثر انگشت کوچک در دست دیگر است کتاب مقدس به تاکید به ما تعلیم میده که تمامی اعضا در بدن مسیح با همدیگر دیگر ارزش یکسان دارند. تعجب آور اینه که بسیاری از زنان بر این باورند که عهد جدید کتاب مقدس مخصوصا رسالات پولس زن رو در جایگاه پایینتری قرار داده. من در بین قبایل عقب مانده زنانی رو دیدم که در خانه هایی مثل خوکدانی از یک سینه به طوله خوک شیر میدادن و از سینه دیگر به بچه خودشون من فرهنگ هایی رو دیدم که در اون مردان خوابیدن با زنانشون رو مثل خابیدن با خوک میدونستند. اونها کار زنان رو در مزاره متوقف می تا با اونها روابط جنسی داشته باشند. ولی در نظر اونها زن به هیچ عنوان با اونها برابر نبود. مردانی هستند که زنان رو جزی از مایملک خود و یا برده خود میدونند من دیدم که سانی به اون فرهنگ ها رفتن و زبان اونها رو یاد گرفتند. و انجیل رو به اون زبان ترجمه کرده و به اونها دادن و اون مردم با خواندن کلام خدا تبدیل شدن و اولین اتفاقی که می‌بینید در این جوامع تبدیل یافته میفته اینه که موقعیت زنها بهبود پیدا میکنه و زنها ارزش پیدا می‌کنند برای اون مردان زنان ارزش برابر پیدا می‌کنند چون کتاب مقدس میگه زنان با مردان برابرند تمامی اعضای بدن با هم برابرند پس برابری و همدلی مشخصه های این بدن ایمانداران هستند که کلیسا خوانده میشه. در بخشی از دنیا اگه کلیسا تحت آزار هست در بخش دیگر دنیا باید قمخاری وجود داشته باشه. من وقتی دانشکده میرفتم فوتبال بازی می یکبار یک بار توپ فوتبال رو روی کپی از چمن قرار دادم و میخواستم از اونجا شود کنم. اما وقتی پام با توده علف برخورد کرد فهمیدم که سنگ سختی زیر علف هست و من با قوت تمام به اون لگت زدم، پای من داخل کفش چنان باد کرد که مجبور شدن منو به بیمارستان برسونند. انگشت شست پای من و عقب برگشته و محل مفصل کاملا خورد شده بود. اون بدترین دردی بود که تا حالا کشیده بودم. در حالی که مشغول کار بر روی انگشت شست من بودن من دلدرد شدیدی داشتم. حس می کردم باید به شکمم بگم شست پای من آسیب دیده تو چرا درد می کنی؟ دکترها به این سیستم اعصاب سمپاتیک می گن. اونا میگفتند که شکم من با انگشت شست پای من هم دردی میکنه. اگه شست پا درد کنه شکم دوچار اسپاسم شدیدی میشه. پولس رسول میگفت در کلیساها هم باید اینطور باشه. اگه عضوی ناراحت باشه شما هم باید ناراحت باشید چون یک حس همدردی در بین اعضای کلیسا وجود داره. این سیستم سمپاتیک باید در کلیساهای محلی هم باشه. وقتی شما این آثار انگشت یا خصوصیات رو داشته باشید وقتی شما بشارت داشته باشید و معمولیت بزرگ رو به انجام برسونید وقتی مشخص باشه که کلیسای تعلیمی دارید وقتی کلیسای شما کلیسای رفاقت هست وقتی کلیسای پرستشیه، کلیسای دعاییه کلیسایی که اتحاد، تنوع، کسرت، همدلی و برابری داره اینها آثار مری انگشت کلیسای نامری هستند. اگه شما این خصوصیات رو در کلیسای محلی خودتون دارید اون وقت میتونید بگید که جماعت شما تجلی بارز کلیسای عیسی مسیح است. وقتی کتاب اعمال رسولان رو مطالعه می کنید، دنبال الگوهایی بگردید که پدید میاد و به ما میگه که کلیسا چیه و باید چطور باشه. من به با عنوان شبان اغلب فکر میکنم کنم که مهم ما بدونیم سعی داریم چی کار کنیم و چطور این کار رو می کنیم و تا چه اندازه در این مسیر موفق بوده ایم. اما حداقل باید بدونیم چی کار داریم می‌کنیم وقتی کتاب اعمال رو می‌خونید و وقتی این الگوهای کلیسای محلی رو می‌بینید باید متوجه بشید که اونها سعی دارن چیکار کنن چون در کتاب اعمال از نمونه مرئی اون می‌تونید متوجه بشید که کلیسای نامری ایسای مسیح باید چه کلیسایی باشه ما نمی‌تونیم الگوهای دیگری به غیر از آنچه من در اینجا ذکر کردم پیدا کنیم مثلا شما می‌تونید جفاه ها رو از بیرون و مشکلات رو از درون کلیسا ببینید این از بد به تولد کلیساها وجود داشته گفته میشه که شریر به مدت سه قرن سعی داشت به وسیله آزار رساندن کلیسا را مغلوب کنه و متوجه شد که هرگز نخواهد توانست این کار را بکنه بنابراین از حدود سال 313 شریر به اون ملحق شد این زمانی بود که امپراتور کنستانتین ایمان مسیحی را پذیرفت و مسیحیت رو قانونی اعلام کرد بعد از اون همه میخواستن مسیحی بشن به این دلیل در سال پانصد کسی نمیتونست در امپراتوری روم کاری داشته باشه مگر اینکه اقرار میکرد که یک مسیحیه از اون به بعد ما با این چالش بزرگ مواجهیم از کجا باید بدونیم کی مسیحیه از زمانی که شیطان در بعضی مناطق به کلیسا ملحق شد تشخیص این خیلی سخته اما این الگو رو ملاحظه کنید جفا از بیرون و مشکلات از درون وقتی کلیسا از بیرون با جفا و از درون با مشکلات مواجه میشه الگوها پدیدار میشن در کتاب اعمال الگوها رو دنبال کنید چون در این کتاب تاریخ عهد جدید این چیزی که او در اول قرنتیان ده یازده میگه صدق میکنه که این همه به طور مسل به دیشان واقع شد و برای تنبیه ما مکتوب گردید که اواخر عالم به ما رسیده است. حالا به کلیسای محلی خودتون نگاه کنید آیا این آثار انگشت و این الگوها در کلیسای شما قابل مشاهده هستند؟ و بدونید که باید این خصوصیات در کلیسای شما وجود داشته باشه عزیزان بسیاری از خواهران و برادران ما در مسیح هستند که به خاطر ایمانشون به مسیح تحت آزار و شکنجه هستند. حتی شاید شما یا جماعت شما توسط هاتون و حتی دوستانتون تحت جفا هستید امیدواریم داستان قهرمانان ایمان پتروس و دیگر رسولان مایه تشویقی برای شما باشه. خداوند مشتاقی که از جفاها و مشکلات برای نشر انجیل استفاده کنه. دعای ما اینه که علا هر مصیبتی که سر راهتون قرار میگیره در ایمانتون شجا باشید. تا برنامه بعدی دعا میکنیم قوت روح القدس بر شما قرار بگیره تا انجیل رو با همه درمیون بذارید.